autonomous من الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمه چندان نوشته رب العالمین رب العالمین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 کشات سوز اب ابن يا انشاء الله ن که نعبد و ایاک هدينا الصراط المستقيم ربي المستقيم dələ poxta dair. Elə biraz poxtə tərad Söz buyurun. biraz doğroş dediniz. bir sər taya doğroş bir sər سرات المستق... سرات المستق... تاید سراط المستبى سراط المستبى اتو... تايโด دین سراط این دین سراط المستبم و بِثْفور بِثْفور مُحِيط مُحِيط, محيط. بخص. بخص. محيط. محيط. محيط. صراق. صراق. موسیقی بیسی در بو آلات رو تیتنده ایتی چه آلات نمازون düzdü, væli poxta dəyər tağlı. Bir ۓ انه گزیط می کم کند مر قد را را شا separatie شوشت و нимد جود متد چمر ح타ی دار موسید شوشت و دارم مر قzetل می کند خیرف این اگرو سینه گافش دو لوز، او هوا خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین first time really I said she was be doing the bismillah he was alhamdulillah alhamdulillah <coughs> thank all ما لك يا امتنان يا <تصفيق> من <تصفيق> لي <تصفيق> اهدنا الصراط عن <تصفيق> تعلی یعنی قرایت قرآن در لحنهای <سؤال> قرآن صحب متنویده لحنهای قمنجیز وارمزده لحنهای نسبتا شاد وارمزده مثلا لحن قمنجیز بلاره استرام دیم براز سوزو شوقه جدتیرم که به آلم قرایت قرآن ها به آدزواره دو مثلا لحن قمنجیز بیشتر استاد عبدالباسد لحن قمنجز ننو خیار الهان شاد غم انگیزترین لحن و نغمه نغم نغمی قرآنی لحن و نغمه سباد سباد مثلا مدرسوندی ای که نعبد و ای که من شادترین لحن نقمات قرآنی سگاه داری. علاپ لرده دیالا سگاه همون فارس دارن جد افتا عادل فارس دار. الان به لحن شاد دارن اخیاتی تن شادد مثلا حالا در این بیر نو غوزنه دا بهشته حضور من مثلا دوباره همان لهنه ساده کاریم چند طولانیترو خیرم ا رب mim mim سگا سبا سگاه اردن اصلا نشده بیشتر تا بار سگا. سگاه خاندانهان سگهای نفرگرله بودار بودن فرگر نه بورانچه سبا. باشه امسان اول حید حجاز حجاز توخ دل چوک درنیشندی عبدالباسیت سوری هشر در لعو انزلنه وار حالا من در حد در سات پایین و زائف حالت در حجز از رب به مالکی او مذیم نعبد محمد بر اساس هم نعمی اجازت داده بله. نه اول داریم سگا، سبا، هزار، نهوان، اصل اصلی ایران ننجیده برایم. حالا من تازه افطاریم شم سه صبح ولی حالت ت حالت زیم حالا ت آو خینم. رب العالمين الرحيم بتن شد ایران نان جدربله نه هم وندو بیات بیات چه چه شی وار هم توک کمیندیز ولا گارا ولا و هم, سو هم چه چه شی وار بیشتر والات سوزن اصلی هر دار من سکول نسوری هم دیچه با هم خودخ بیات دارم اول سری چه بیات نغمه بیادتون هم تلاوید شروع گلار. نقمه بیادتون می مثال معمولی سبود رو <تصفح> ایا که نعبود و ایا که نستعید. عبدالباسد پیشتر بیاد جهر. بیادتون هم سبا جهر چیدن هم نقمه نسمتاً بزنار. دم انجیز. تا این هم Rəst. Rəst bidənə nərməyə xışəndə. Bu yerdə ki istəsən toparlayasan tərəfi. Gedün zəngəliyün, gedün burun. Süz niyə budur oturubsuz? Niyə Allahın sözünə qulaq asmırsınız? O آیات içə məna yə sarzənəşə var, məna y var, təshalluz var, rəstən əngələr. Məsələn, hala bir ayram halətinə bir qismət الحمد لله رب lar rəstdən çox oldu. Bir dənə bağda nə məna? Nə cürəndir 6 dənə, eee bir dənə də çaharğa. Çaharğa, çuğ, xəmənci və dilpəzir nğımdır. Şahkar çaharğa surə و اینا نجوم کدرت و اینا الجبال حالا همون ساده <تصفح> البته به غیر صحاب عبد الحمد لله رب بال العالمين عمره من <تصفيق> الرحيم مما سخ دنسوز سوزناش تر ده جمله بود. مخصوصا اجبار مادی هلا ماد دوست سخ زیباتر بسم الله Usul qiraat-i Qur'an'ı az-cihət-i lehni şikl ödür. Məmlumən birdana qarı misri çədarətur oxuyur. Əvvəl bayatdan bayattan başlayır. Məsələn istə 20 dəqiqə tilavəti ilə bayattan başlayır. Sura keçir məsələn rəsdən. Məsələn Şəhadən var. Keçir rəsdən 5 dəqiqə rəsd oxuyur, 10 dəqiqə oxuyur. Sura bir çüç-çiçə çağırılar oxuyur. Sonra seqam سورا بیدکه هجاز، معمولا هجازه بید تک تک دکه جلاله، چه عنوان نجین و تلاوت بولار معمولا مهمترین فرازهای مناینه ستساله هجازه هجازدان دا سورا بهتر الله، بیاد دو چه بیر سورا دا جلاله بلار قاردیان امیسری معمولا بو ترتبنه جلاله ببتا متنوه دو خیال اولی هجاز kuranımız çok حال تمگ و moż ب Liliumid معویم اجلي ز�� 1941 اجام را از هم loss و اجسوز معمول حجمت و اصل اصلاً چه بیز بلمنق انسان بلخلا خداوند افتاد بردا سیزده ایرون بیز نونچون دو بیل ولی او شیئی چه ظاهر خود و عبارت سیزده دارانان بوده که او عبارتت یک چه مثلاً سیزده کنید مثلاً مومنین چه سانی هستن که وقتی مثلاً نام خدا را می شنوند سیزده می کنند Bu معنا متناسب ده biz بز بیزده سجده یک یا مثلا بردن او بیزده یک بیرده دیر چه سجده کنید و او را عبادت کنید خوب سجده یک یا مثلا سجده کن و فیلان یعنی کلماتی که مناصب سجده ده او را جلبته و درخواست سجده ایده مومنینن یا پیامبردن بیزده برای اینچه تأسیل یک پیامبردن و مومنینن روزیمیز قدم درده یا بیزده حکمت خاص پیچیده و اصرار آمزی و خداوند مطال استر بندسین جورت چه بالاخره روحی خضوع و بار کلا رو واضح بیدیم چه خیلی دادم مستحب دادم نه نه نه نه اشید مثلا زاد ها یادم که انتزاد دیگه زاد. من تو این فیلم شنیدم قبلا خیلی با غیر عليهم سمت راست و یهنین دلی سکا زخن لسیه. وَلَا bir بِرسَلَا بَقَامِنْ رَا